از نفس پرور هنروری نیاید و بی هنر سروری را نشاید. مکن را بر گاو بسیار بار که بسیار خسبست و بسیار خار. چو گاور همی بایدت فر بهی چو خر تن به جور کسان دردهی.